بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الصلاة والسلام على رسول الله و بعد خب بحث به اینجا رسیدیم که اونها خود اون چوب و سنگ از خود به خود اونها اعتقاد نداشتن به برکت آنها اعتقاد داشتن که اونها مبارک بودن که این برکت رو در اونها قرار داده خدا قرار داده پس اعتقادشون به خدا بود نه به خود ذات سنگ و ایضا قولو که الشرک و عبادت الاسنام اونها میگن شرک, شرک رسیدن تعریف عبادت بتها ما мигим хал مرادک ان الشرك مخصوص بهدا یعنی شرک فقط خاص این اعتقاد فقط در سنگ داشته باشه اون مریض خوب میشه فقط همین شرکه و ان الاعتماد علی و دعائهم لا يدخل فی اگر اعتقاد تو انسان صالحی مرده ای داشته باشه یعنی مثل اون اعتقاد در سنگ نیست این منظورت اگر منظورت اینه که این خلاف نصوص قران و نصوص سنته تن اون чизе ки дар нусуси ഖуръон اومде ини ки онҳое ки малаикаро васита қарор мидаданд ё солиҳаин аз қавми нуҳ онҳо ҳам инсон буданд эътиқоди ба зато онҳо надоштанд эътиқоди ба барокати онҳо доштанд чун одамои солиҳ буданд мусаҷҷа ба дуо буданд эътиқоди ба дуошон доштанд эътиқоди ба худишоне надоштанд эътиқод надоштанд ки онҳо خالқ ва розиқан ва ҳада ярудҳу ма закраллоҳу таало كثاني كي قلبشو متعلق بود ببركة عيسى و بركة مريم و بركة صالحي فرق نميكن فلابد ان يقرد لك ان من اشرك في عبادتي الله احدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب بس پیش خدا شريق قرار دادن خدا چه با سنگ باشه چه با چوب باشه چه با عيسى باشه چه با مادرش مريم باشه چه با ملائكه باشه فرق ميكنه پيش خدا؟ نمی کنه. این قبلا گفته شده بازم داره داره میگه داره تکرار میکنه پیش خدا همه اینها شرکه شرک فقط شرک قرار دادن یک سنگ و یک چوب نیست بلکه ملائکه هم اگر بین خودت و خدا قرار بدی عنوان شرک اونم میشه شرک مریم و عیسا هم قرار بدی میشه شرک و سر المسأله انه اذا قال انا لا اشرکو بالله فقل له و ما شرکو بالله فسره لی حالا دوباره توی که میگی من شرک به خدا نمیارم الله شرک رو تعریف کن آیا شرک الان هنوز همونه که شرک فقط پرستیدن چوب و سنگ یا نه پرستیدن عیسی و مریم دعا دعا کردن اونها صدا زدن اونها هم شرکه اگر بخود رد بکنه بگه دعای اونها شرک نیست قرآن رو رد کرده قرآن رو رد کرده و ان قال هو عباده الاصنام فقل هو ما عباده الاصنام فاسترها لي و ان انا لا اعبد الا الله فقل له ما معنى عباده الله فسرها لي لكم همين همون مساله دوبره تكرار ميجي كي اگر ميجي كي شرك عباده بتا هست عباده بتا را تفسیر کن یعنی چی عباده بتا شامل چی هست چی نمیشه عبادات چیه و اگر گفت که من غير از خدا را نمیپرستم نمیپرستم بگو کی بگو معنای عبادت را برای من ذکر کن عبادت یعنی چی فاین فسرها بما بينته فهو المطلوبك تفسيرش که طبق اون چیزی که ما خوندیم نجات یافت از جهنم خدا وگرنه این شخص اصرار داره بر چی؟ بر شرک اکبر و ان لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه اگر نفهمید هالیش نشد چطور میاد ادعا میکنه که این کار نیس؟ تنو دانی، تنو دانی، تنو دانی این شرک نیست اگر تو نادانی تو نمیتونی حداقل تو نمیدونی که این فعل شرک است یا نیست حالت اول ما یادت بدیم بهت بگیم که این شرکه طبق یک دو سه ادله هفت وجه گفتیم قبلا درسته یادت بدیم یادت دادیم. حالا میگه من یاد نمیگیرم حالیم نمیشه تو کلم نمیره عامیم خب تو که تو کلت نمیره دعای خود خدا مستقیم هست این دعای غیر خدا هست توی این مسئله دعای خدا محکمه یا متشابه کسی اختلاف داره من خدا را صدا بزنم مشرک میشن نه این توش محکمه این محل اختلاف نیست توی دعا و صدا زدن متوسط شدن به مورد اختلاف یا اختلاف نیست بگیم فرضاً اختلافه فرضا اختلافی نیست بین اهل توحید اختلافی نیست فرضا بگیم ما اختلافه متشابهه کدام یک بهتره ما این متشابه را ول بکنیم به اون محکم بچسبیم یا اینکه نه محکم راها رها بکنیم بچسبیم متشابه کدام یک از عقل و خرد تو که حیمون نیستی تو که نوخرد نیستی تو که جاهل نیستی تو که یعنی بی و خرد نیستی خدا بهت عقل داده خدا رو رها میکنی غیر از خدا را صدا میزنی خدا خواست تو خودش رو صدا بزنی فلا تدعم الله احدا خودش از تو خواست که او را فقط صدا بزنی ایا که نعبد و ایا که میگی تو این ادعا تو رها میکنی که میگی فقط تو را میپرستم بعد چسبیدی به اون متشابهی که متشابه هم نیست که ما داریم نهیت میکنیم ازش چرا اصل را رها کردید چسبیدی به فرح مثل داره غرق میشه؟ мигран биа севар кштишу миге на ман би чӯб мичасам ҳоло икашм чӯб буд чӯб ҳам нест аҳне зарқш мекунад ту қаъри jahannam икаш чӯб буд чӯб а тақро адам нагаҳмидаре аҳне уро зарқ мекунад мибаред паин наҷот дар ине ки ту يفعلون في هذا الزمان بعينه وأن عبادة الله وحده لا شريط له هي التي ينكرون, عليها ينكرون علينا ويصيحون منه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لا شيء عجاب أجل قرار بشه الشرك رأى تفسير بكنا بغير تفسيرك دار قرآن وصنة مدى شرك شريق قرار جدا غير الخضاء دار أجل عبادات اگر بإنت بغیر از این تفسیر بکنه طبق اون چیزی که در قرآن اومده و در سنت اومده وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد اگر بغیر این چیزی که در قران اومده تفسیر بکنه این شریک جرم با اون کسانی که ما را متهم میکنن کسانی که به ما میگن شما تندروی شما وهابی شما نمیدونم اومدید دین اوبا و اجدادمون خراب بکنید شما نمیدونم سبحان نواب کنید. و بحان الله نوا بکنید یسممونها به غیر اسمها به ما میگن مک به ما میگن کافر به ما میگن مللحد و زندگی چرا چون اومدیم گفتیم خدا یکاس فقطقدری خدا باید فررسیده بشه. به ما میگن وهابی چون میگین فقط خدا بپخیم. به ما میگن مشرک چون میگن فقط خدا را به تکیح را صدا بزنیم. یسممونها به غیر اسمها میگ بهدا مشاعرششون کافر همه را به کیش خویش بندارد. چون خودش در شرک افتاده چون خودش مشرکه چون خودش غیر از خدا راست فعل او شرکه به ما میگه مشرک فعل او خروج از دینه به ما میگه وهابی ما را از دین اسلام خارج میکنه میگه اینا مسلمان نیستن اینا طاغوتن اینا فلانن هزار تا تهمت میزنه اینا زن ان اینا نمیدونم با هزار تا مردم مردو از ما متنفر میسازن چرا چون ما گفتیم خدای یکتا را بپرستیم همون, تا... همون چیزی که در دستوره یاسین میکنیم و تخت و میگه کون هرگز ربی الله كثير میگوشه تنگه تا ورزگارم الله با کسی مبارزه میکنید به جنگش میایید میخایید بکن قول معروف سرشو به باد بدید شکایت کردن و برق نوشتن و امضا کردن و امضا گرفتن به خاطر چی جرم شیئه بخاطر خاطری که میگه خدای یکتا رو قبول دارم سر به سجده به غیر از اون نمیذارم این جرم واقعا این جرمی که ما باید مؤاخذه بشیم این جرمی که باید ابراهیم مؤاخذه میشد تو آتشش انداختن حال تو با حال قوم ابراهیم چه فرقی میکنه؟ کنه حال تو با مردم زمان و زمانه که اهل توشید را وخابی خطاب می کنن و خارج از دین خطاب میکنن کنن مرتد از دین خطاب میکنن و طاغوت حساب میکنن کنن حال تو با حال اونها چه فرقی می کنه حال همون حاله واقع همون واقعه واقع همون واقعه چون شرک را نفهمیده معنای شرک را نفهمیده اهل توشید را مشرک خطاب میکنه. اونها بر ما عبادت خداوند یکتا را انکار میکنن اونها داد و فریادشون داد و فریاد چیه داد و فریاد ابو جهل اجعل الالهه الهنا واحده انها ان هذا لشيء عجاب داد و فریادشون اوننی اینها اومدن مردگان ما اولیای ما رو از ما بگیرن های ما اینها ولی بودن اینها اومدن اینها از ما بگیرن نه نه نمیدی برای خودت مُنَیّریینورا شما ای بندگان خدا خدای خود را رها کردید چسبیدید به غیر خدا ما اومدیم بهتون داریم میگیم به بچسبی. خدا بچسبید خدا نجات نجات الایس الله بکافن عبده خدا مگر کافی نیست مگر خدا کفایتمون نمی کنه ما داریم این میگیم نمیگیم اون اولیا آدمای بدی بودن اولیا بودن روسیه رو سر چش اهل عبادت بودن اهل طاعت بودن مثل اونها باشین مثل اونها وشي هم تركونها اهل تووشید بودن على عبات بودن خدااپست بودن شما هم خه ن بود. بودن که این اولیای شما تعزد می خوندن قیام میکردن صدقه میدادن م نبود بإ مقامك رسیدن ولايات بإن ولايات رسیدن با رسیدن م نب ععبادات بود و با هم ععبادات يكون میدادن تو هم همون عبادات انجام بده. فإن قال إنهم لم فروا ببدائل الملاائك والأمبية وإما كفروا لمماقال الملاائك بناات الله. و نحن لم نقول ان عبد القادر ولا غيره ابن الله فاکون مسائل شبهه دهم 11 می یاد ندارم میگه که اونها اگر بگن که نه ما ملائکه را صدا نمیزنیم ما ادعا نادنیم که ملائکه مثل مشرکین مشرکین علت الشرکشون چی بود اینکه میگفتن ملائکه دختران خدا بنات الله هستند دختران خدا و نصارا کافر شد لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه مش... و نصارا هم کافر شدن چون گفتن عیسی فرزند خداست نه نساره علت شرکشون نسبت فرزندی بود برایشی به عیسی به خدا و دختر بودن ملائکه نسبت به خدا اینا دختران خدا هستند این علت شرکشون بود قبول دارید شما نه ما قبول نداریم علت شرک اونها تنها این نبود که عیسی فرزند خداست تنها این نبود که عیسی فرزند خداست پاسخی که اینجا میده فالجواب ان نسبت الولد الی الله تعالی کفر و مستقل اینکه بگیم خدا فرزند داره خدا دختر داره یک کفره کفر مستقل و این که اونها را واسط قرار بدیم بین خودمون و خدا این کفری دیگری هست غیر از اون کفر دلیل قال الله تعالی قل هو الله احد الله الصمد واش استدلال والاحد الذي لا نظيرا له احد التک تک خدا نظیری نداره این احد لم یلد و لم در تفسير شما احد نه به دنیا اومده نه کسی ما زایده شده منم محتاج همسر نه مون ایجاد درسته و نه هم پدری داشته نه مادری این احد تاکه تکه نه محتاج بوده کسی او را به وجود آورده و نه هم کسی ازش به وجود اومده خدای دیگری ازش به وجود اومده این احد تاکه تکه در ربوبیتش تکه قل هو الله احد والاحد الذي لا نظير له والصمد في الحوائج صمد چی تعریفش کسی که غنی هست و ما محتاجشیم سمد اون کسی که بی و مردم حاجاتش نیازشون به درگاه او از او می به درگاهش از او می طلبن سمده یا ایتون الحمدلله رب العالمین الوهیت ربوبیت قل عوضه رب الناس ملیک الناس اله الناس اله الناس یه و رب الناسم هم طرف قل هو الله احد ربوبیت الوهیت ربوبیت تاکه در ربیتش خدا خالق فرده درسته احد و الله السمتیه ربوبیت و الوهیت الوهیت الله السمد درچی الله اله معبوده الله صمد سمد یعنی محتاج شدن بندگان خلائق احتیاج رزوم طلبن این رد کیه رد اونهایی که دارن میگن ما ما نمیگیم که عبد القادر جیلانی فرزند خداست اون مشرکین اگر کافر شدن چون گفتن عیسی فرزند خدا ما میگیم خیر اونها کفرشون هم به علت این بود که گفتن عیسی فرزند خداست هم به علت این که عیسی رو بین خودشون و خدا واسطه قرار دادن هم به خاطر شرکشون در ربوبیت هم به خاطر شرکشون در الوهیت شرک هم در ربوبیت هم در الوهیت چون ای بدبخت تو معنای شرک رو نمیدونی در این مشکل افتادی маънаи шрк агар мидонад шрк ҳам дар рубубият ва ҳам дар улуҳӣят ҳеч вақт чүн ин истидлоли намекар та ман ҷаҳда ҳаза фақат куфр ва ла ва лам яҷҳда ахира сура каси ки ҷуҳуд буконад искар баварде бигӯ ман қабул надорам ин ки ин ки шрк ду навъи шрк дар рубубият ва дар улуҳӣят қабул надорам ин шрки ки ту дори меги ман عیسی فرزند خداست اون شرکه این شرک نیست در عبادت خدا این شرک نیست کسی که اینو جهود بکنه هرچند آخر اخر سوره رو قبول داشته هرچند که شرک در ربوبیت رو قبول داره این. شرک در ربوبیت رو قبول داره ولی شرک در الوهیت رو قبول نداره این حالش با حال ابوجهل فرق میکنه به نظر شما ابو جهلم خدا شناسی و یک تا قرار دادن خدا در ربوبیتش قبول کل منافست السموات والارض لا یقولون ما قبول داشت که خدا آفرین آفرینندگاری این که خدا افرد یک تا هست به درد من نمی و به درد ابو جهلم نمیخوره. کوره پس این به دردت نمیخوره. کوره ثمه قاله لم یلد ولم یولد فمن جهد هذا فقط کفر ولو لم یجهد اول سورت و برعکسشم هم همینطور کسی قبول داشته باشه شرک در, در الوهیت ولی شرک در رویت رو قبول داشته باشه فرقی نمی کنه هر دونو شرک اکبر مخرجه است. مل چه در بگه خالقی با خدا هست و چه بگه چی معبود جزء خدا یا با خدا هر دو تا چیه شرک اکبره مخرج از ما با هر دو تاشو جزء شرک حساب بکنیم و قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولدا الايه تفرق بین النوعین وجعل كل كل منهما كفرا مستقلا ما اتخذ الله من ولدا وما كان معه من اله ويد قسمته ما اتخذ الله من ولد. خدا فرزندی نگرفته یہ قسمه تکراری نیست و ما کان معه من اله اولی ربیت در اصل تکرار ما گفتید در قرآن نسبت تا خذ الله من ولد در ربیت شریک خدا بر خدا است نه معه من اله اله چی معنی اله معبوده با خدا هم معبود دیگری نیست شرک در ربیت و شرک در الیه اگر بگیم هر دو تا در ربیت چی میشه تکرار و خداوند از کردن و اضافه کردن و حرف وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وجعلوا لله شركاء الجن ففرق بين الكفرين وجعلوا لله شركاء الجن ك مشركين مشركين يعني كه قبول داشتن خداون در روی قل من ما في السماوات قل من يرزقكم من السماء والارض قبول داشتن كه خداون رزق روزي ده بين خودشون و خدا الجن قرار دادن دل درست دل. و جعل لله شركاء شريك اون جن شريك در عبادات و دعا جنیان قرار دادن شرکش در عبادت بود در روبیت در عبادت پس مشرک شدند بس این معنای شرکه و دلیل علی هذا ايضا ان الذين كفروا بدعاء الات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله و شما گفتید عیسی اونها مشرک شدند چون عیسی گفتن فرزند خداست مشرکین هم کافر شدند گفتن ملائکه فرزندان خداست و اون هایی که گفتنلات را میپرسیدن و منات سالة الأخرىلات منات را صدا می زن اونها آیا گفتن لا فرزنده خداست دختتر خداست اونها چرا مشرک شدن. اونو قبول نگردی اینها چرا مشتک شدن ان الذي كفروا بدعا الات معكونه رجللا صالح لم ي جهبن الله والذنا كفروا ببعواات الجن لم ي جعلهم كذلك. اونایی که باپاسیدن جن مشررک شدن اونایی که نگفتن جنیان دختران خدا یا فرزندان اونای کلات و مناط عز را فرزندان خداست نگفتندم که دختران خداست اینها هم مشلک شدند و فقط شرک در ربوبیت نیست شرک در الوهیت است و العلماء ايضا و جميع المذاهب الاربعه يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم ان لله ولدا فهو مرتد وإن أشرك بالله فهو مرتد فيفرقون بين النوعين بركي طبقه اخیر بخون من اولين جلسه اووردم از کتابه احناف و شوافع و مالکیه و حنابله اووردم و گفتم در باب حکم مرتد میگن اگر کسی بگه خدا فرزندی داره محمد و سلام فرزند خدا بوده مشتق گردنش بازده بشه مرتد. اگر کسی بیاد در زبح و نظر و در نماز و در سجده و در دعا کردن بیاد بین خودش و خدا واسطه قرار بده و برای غیر خدا انجام بده این عبادت ها اون شارچیه مرتده باید گردنش زده بشه این دوتا تا حق در کتاب خب ما نفهمیدیم ما نمیتونیم آیا قرآن بفهمیم علما مون چی چرا شما نمیرید کتاب‌های رو بخونید چرا شما بین فقه و عقیده فرق می‌ذارید چرا شما در فقه میگید مرده نمیشنوه و بعد در عقیده میاد میگه نه مرده میشنوه چرا در فقه میگید که ذبح به غیر خدا شرکه ولی در عقیده میگید خودتو میرید انجام میدید میگه نه این قربات این تقرب به اولیاء و صالحین چرا جز این که شبه بر قلب شما چیره شده جز این, که جز, جز این که شما شیطان بر قلب شما چیره شده جز این که قلب خودتر را بستید و قفت کردید همچون مشرکی که قلبشون پلوم بود از فهم قرآن درک, درک قرآن همونطوری که مشرکی فقه و فهم نداشتن همونطوری که مشرکین قلبشون قف, قف بود افلا قلوب قلبشون قف بود شما هم قلبتون را کردید و باز خردنا این قف دست خودونه خود خلتن بق تا خدا بخواه وما تشعون إ أن يشاء الله ختون بقا تا خدا بخواد. قرار برع نیست که معجزه بشه بقفها باز بشه نه این معجز اراده خودنا خودت بخواه برو دنبالش تا خداون سهم درد بهت بده و تورا بثرت دردين خودش عطاب فرمایت. وهذا فيغاية الوضوح ان واضح و سرريح وروشان. فقال شكار تركتكم على البيضة ليلها كنهارية شب روزش بهم يكي تركتكم على البيضة والله شر روشن والله دين روشن اختفر رسول اللهم يقول من حلف بغير الله فخد اشراك واضح الدعا هو العبادة واضح يكن فقط چي ميخاد درك ميخاد يكن فقط بسيرات ميخاد يكن ميخاد پردرا جلو چشم باردري پرده تعصوب پرده خرافات پرده اعتقادات باطل فقط ميخاد انا جل چشم باردري اعتقادات باطل که نسی درش دار نیست در اون ولی صرف شده که ما در این انحرافات بیفتیم و قال الا ان اوليا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون شوف ولا تكرار شو درسه قبلا گفته شد به طور مجملا اینجا فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون بله اوليا خدا حق ولی بودن حقه ولی عباده اولیا درش نیست عبادات از خدا وقتی یک تا و ما نحن لا ننكر مع الله هم رو خدا اونها عبادت بشن ما اینو انکار میکنیم و اشراطهم معه شریک قرار دادن اونها با خدا ما این قتی کردن اونها با خدا ما و عليك حبهم واتباعهم والاقرار بكراماتهم براتون واجبه که به کراماتشون به ولی بودنشون اعتقاد داشته بشه آدمای خوبی بودن ما با پرستیدن اولیا مشکل داریم ما با پرستیدن اولیا مشکل داریم ولا یجحد کرامات الاولیاء الا اهل البدع والضلالات اون گمراه اون اهل بدعتان که کرامات اولیا را قبول نداریم کرامات اولیا را قبول نداریم همون طور که خداوند ابراهیم خلیل الرحمن را از آتشی که برپا کردن نجات داد اون ولی خدا و مسلم خولانی هم خداوند وقتی که در یمن از سابعین یا مخذرمین مخضرمین گفته شده از مخضرمین در آتش انداختن او را خدا نجات داد. برای خدا فرقی نمیکنه ان لنا نسر و رسلنا ولذین امنوا هم اونت که پیامبرارو نصر داده با کرامت اولیای خدا هم نصرت میده با کرامت ولی خدا تصمیم می گیره این فکر نکنید که که برید گوشه بکنید با تعبد اونطور که مولانا میگه به جای رفیق مینرسه به درجه فرشتگی میرسی هر کاری دلتون خاص انجام میده روی آب راه میرید امام شافعی رحم الله فتوایی میشنوه از امام مالک که گفته کسی که بر روی آب بره اولیا امام شافعی میگه ها شاء وكلا میگه همونطور که خدا اوولاددار شیاطین هم اولیا دارن انشیاطین لایوسونونه ال اوولایه. از کجا معلوم که این اولیای شیطان نیست با صحر و شعر ببد بازی و جاده و جنبال با جنیان از روی آرد نمیشه؟ از کجا معلو که این اوولای شیطان نیست.کرراماتمرجزه نیست.کررامات که بد خود شخص نیست. کرامات نصررت الهی است. کرامات نی مده که بگ من آقاکرراماتدار من برحققا. کرامات نجاته اماانکررامات هم قبول داریم. همونطور که بر انبیا معجزات را قبول داریم بر صالحین کرامات رو قبول داریم اونجا اعجاز در پیامبران برای تایید حق و در صالحین برای کی نصرتشون برای اینکه نجات بیابند برای اینکه از دست ظالمین نجات بیابند من یک داستان برایت تعریف می‌کنم این داستان از باب این میگم که قوت قلب برای موحدین باشه بدون که خداوند ناصرش شده است خداوند نصرت میده اهل حق اهل یکی از موحدین از طلاب تاجیکستان اومده بود در مدینه برای تحصیل بعد از فارغ تحصیلی میره تاجکستان برای دعوت دادن دعوت به توحید اونجا اوقافشون دست اهل تصوفه اونهایی که توسول مرده و قبر اینا رو قبول دارن این بنده خدا وقتی که میره دعوت به توحید میده دستگیرش میکنن زندانش میکنن زندانمان رئیس اون زندان, زندان شخصی بود ملحد زندیق دین سیتیس این کومونیس ها زیادن در یا روسیه جدا شدن از شوروی از روسیه ی حالی زیادنی نشواس این بنده خدا را زندان می کنند اصلاب مدینه این مال 100 سال پیش دی 200 سال پیش دینم الان هم قد میگم مال 200 می سال قبل میگم این بنده خدا میره تاجیکستان و بعد دعوت میاد زندانش می کنند زندان شب که میشه بهش خبر میدن که سه نفر توی سرما مردن از زندانیان سه نفر مردن یخ زدند درجه 20 درجه زیر صفر 20 30 نزدیک سبری هست زیر میرسه یخ زدن، خوش شدند زندانبان دستور میده این شیخ که در اون زندان دعوت میداده همه دعوت به توحید میداده دستور میده تو اون شب سر لباس و تنش بکنن در جنگل رهاش بکنن چون معمولا زندانها کنار جنگل ها و در گوشه گوشه‌ای از شهر خصوصا دور از شهر بنا کردن و همسنان هم همینطوره زندان ها معمولا دور از شهره شب که میشه اون بنده خدا اون طالب علم را از زندان بیرونش میکنن در اون دمای زیر سفر که بی میره یخ بزنه. اون زندانبان خواست تقام را بیگیره از این شخص. چون من شمکردی که نماز میکن افرا داشت که نماز میکنه. شخص ملکت بود زندگی بود. شب میره وارد جنگل میشه خی را میبینه. بینه. نده ای. خرس میاد از پشت را در آغوش میگیره از شب تا صبح. شخص اون شخص اون طالب را، طالب علمه زنده از طالب علمه نه مورده هنوز زنده.گوو را در آغوش میگیره تاصبح. صبح که میشه تو جنگله جنگله و هیچ جایی هم نیست که برای غذا هم نداره همه چیز یخ زده میره در زندان را میزنه دوباره که در زندان را باز بکنین در زندان را میزنه سرباز تعجب میکنه. تو زنده ای در این دمای زیر صرف بدون لباس چطور زنده ای میره از زندانمان وقت میگیره و بهش این قضیه را توضیح میره. میگه به زندانمان این قضیه رخ داد این بنده خدا که از زندان بیرش کردی که ب میره زنده. تو تعجب اصلا میگه میشه زنده باشه بدون لباس دمای زیر صفر شخصی تو سرخانه بذاری فریزر بذاری ببین زنده میکنه یا نمیونه ممکن نیست تو اون یخچال زنده مونده تو اون فریزر دمای زیر صفر زنده مونده نمیدونم با میگه بیا چی شد؟, چی شد که تو رفتی تو جنگل و زنده ماندی گفت کی شما در زنده را باختید رفتم توی جنگل خرفی مدت مرا آغوش گرفت تو سم یعنی همین گفت که یعنی بس من یافتم و داشی که نبودی، زومی که نبود، کبریتی که, که نداشتم، لباسی هم نداشتم. تا صبح خرس اومد من مرا در آغوش گرفت تو والله قسم میخورم که خدای یک تا را قبول دارم و ایمان وردم به اون خدایی که تو قبول داری و باور داری. زندان ایمان میاره اونجا. ایمان میاره به خدا نه به اون شخصا. ایمان میاره به خدای اون شخص نجات دهنده خدا بود. اون شخص که با دست خودش نجات نیافت. نمیدونید از تقدیرش، از خدا و قدرش. ایمان میاره به اون خدای یکتا. برنامه میریزن بعد از بقول موب برنامه رین و نقشه فرار فرار میکننستا جو الان هم در مسکو در روسیه به سر می برند. فرار میکنه و میره اونجا به هنوزم دعوت میره در مسکوث اون داعیه اون زندانبان هم باهاش فرار میکنن هر دوتا با هم فرار میکنن خاطر دینش فرار میکنن. قال ولا یاش ح کرامات اوولا احل بده عی و ضاللات و دیین الله وسطون بین طرفهه. گمرههان چه کسانی کاممات را قبول نداشتند همونطور که شفع را قبول نداشتندمرتقل اگر احادیث صحیح ثابته در این باب کراماتی که در قرآن اومده کراماتی که در قرآن اومده از اصحاب کهف اصحاب کهف که پیامبر نبودن 300 سال به خواب رفتن کرامات از کرامات هست یا نه کرامات برای چی برای اظهار توحید برای تحقیق توحید برای اینکه مردم بدونن اینا به خاطر توحیدشو فرار کردن این کرامات اهل توحیدن قومشون مشرک بودن از اصحابشون فرار کرده کرامات قبول داریم چون در قرآن اومده ولی معتزله قبول نذارن هرچند که قرآن قبول ندارن ولی ما قبول داریم ما وسطیم بین اهل غلوب کسانی که غلوب میکنن اون اولیا را به درجه خدایی میرسنن حق خدایی بهش میدن و بین کسانی که این کرامات را قبول ندارن ما وسطیم بین معتزلیست و بین اهل تصوف که اعتقال در مرد و اولیه دارن ما وسطیم و هده وهدا بين الضلالتين و بين باطلين ما بر هدا هستم بر حق هستم بين دو باطل و بين دو كمراهي هر دوتا فرقه ها قمراهن چه كثاني كرامات را قبول ندارن و چه كثاني كرامات را در حد معجزة وان وليرا صاحب اختياره طام الاختيار مدونن ما بساتين بين اين دوتا فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك. این چیزی که میگن ما اعتقاد تو پیر داریم تو شیخ داریم تو اون ولی داریم این اعتقاد در اون مرده به ذاتش خودشیه خود ذات شرک این اعتقادی که میگن ما اعتقاد داریم تو ولی تو پیر تو شیخ این اعتقاد که کلمه اعتقاد به کار میداره این اعتقادشون خودش شرکه الَّذِي اُنزلَ فیهِ الْقُرْآنِ که قرآن برای این نوع شرک فرستاده شد برای شرک در عبادت وقاتل الرسول صلی الله علیه وسلم الناس علیه بقتر این شرک و متیان بس اسلام جنگید فعلم ان شرک الاولین علی نتجگیری اخف من شرک اهل وقتنا بامرین حوالی کدونیستی که, که این کار اینها شرکه شرک اولیاء اهل زمان خودمون اینایی که مرده را واسطه قرار بدن اگر دونیستی که کارشون شرکه پس بدون که شرک اینها بدتر از شرک ابو جهل چطور Yani ahl zamana khudamun, anhu ki bi mordi mutawassil mishan, tu veli a'tikad dharan, bi koli kudishol. Shirkishun az abu jahlan bettere? Maalif mege bale. Kira biya dalil? Baal dalil bettere leib nike. Dalil chi ber in ki shirkishun bettere? Ahad huoma, avverish. Annal awwalin la yushrikoon, wala yadjoon al malika, awliya, awliya, awli, awli, awli, awli, awli, awli, awli, awli, awli, awli, awli, awli, awli, awli, awli, به هنگام آسودگی خاطر در راحتی می اومدن اولیهاشو صدا می زدن راحت بودن ترسی بر اونها نبود می اومدن ای بوت ای لات ای عزا به ما بده ولی اگر در شدت گیر می کردن کشکی می خواد بشه گروسنگی می خواد بمیرن تو اون حالت کی را صدا می زنن فقط خداوند واحد نبا دلیل داره میاره. میگه می گه این زمان اول در آسودگی فقط مردگانشون رو صدا میزدن ولی در سختی خدای تو را صدا میزدن دلیل و اما فی الشده فیخلصون الدین لله با اخلاص خدا را صدا میزدن كما قال تعالی فاذا ركبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین مخلصین له الدین خالصانه خالصانه مسلمان میشدن خالصانه پایبند به دین اسلام میشدن یک تا پرست میشدن فلما نجاههم الا اگر اون کشی که در حال غرق بود در رخوااب و خوشی می اومد اونجا هست که دوچار شرک می شددن ولی در کشتی در حال شدت در حال سختی چیه؟دعول الله مخلص حالا مشکلی زمان خود مششی. و قالتعل مک مض روص البحر والا من تدعون الا اگر در کشتی خی که میخواد غرق بشه غیر از خدا دیگه صدا نمیزنی به مشرکین داره میگه خدا. چرا اون خدایی که در کشتی که میخواد غرق بشه صدا میزنی چرا در حالت خوبی و خشی صدا نمیزنی؟ ونجا موحدي ترى إن انجا موحدنا مشي خطاب خداونده وقال تعالى قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله واتتكم الساعه اغير الله تدعون اجر عذاب بيات غير الخضر صدا ما تشر ما تشركون وقال تعالى واذا مثل الانسان ضر دع ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نافيا ما كان يدعو اليه من قبل اجى بانسان ضرر ياصيب مصيبتي برسه فقط خدا را صدا میزنه ولي در نعمت خدا را فراموش میکنه واذا غشيهم موج كالذل الايه بذا مهميتو وقتي كه بياد دعوا الله مخلصين له الدين خدا را خالصانه دعا فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتاب اجى اين مساله واين 50 محكم فهميلي وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء انكم مشركي مشرك شدند کسانی که رسول الله با آنها جنگید در خوشی غیر خدا را صدا می‌زدند فقط خدا را صدا می‌زدند في شد فلا يدعون الا الله وحده وينسون ساداتهم و اولیایشون رو سادات خودشون سیداشون و فراموش می‌کردند تبیین له الفرق بین الشرك اهل زماننا والشرك الاولی فرق بین شرک اولین و اخیرین شرک اون قدیمه و اگر دقت کردی به دستت میاد که چرا اهل زمان خودمون بدترند اهل زمان خودمون چه در شدت چه در خوشی خدای در خدا با خدا کسی دیگر رو شریک قرار میدن مشکین زمان خودمون در اون زمان مشریکین فقط خود در شدت فقط خدای یک تا را صدا میدنن و در غیر شدت شریک با خدا قائل میشنن روزی من نقصر بازم بگم خفتگی تو رفتشه سوار قائقی بودم سال پیش پیر زن پیرزانو پیرمرد با ما بودند وسط دریا بین قشم و بندر عباس که رسیدیم این قایق نزدیک بود غرق بشه از بس که موج یهو اون پیر پیرزنا و پیرمردها نشستن گفت قایق 30 ثانیه الله الله داد و بیداد دیگه اون قایق واژگون بشه یکم قایق آروم شد 30 ثانیه نکشیدا سه یا چهار بار نمیدونم دروغ نمیگم نمیدونم یادم نیست سه یا چهار بار گفتن الله الله یک‌کم قایق قراص شد ای امام فلانی سبحان الله. 5 تا دلیل از قرآن، اونها در شدت فقط خدا، دعو الله مخلصین. خالصانه فقط خدا غیر خدا نبود. ولی اصل حاضر در خوبی و خوشی، در شدت و ناخوشین، کی توسط آدم میزنن غیر خدا را ستاد میزنن؟ کدام یک بدتره؟ حال این زمان یا حال اون زمان؟ شرک این زمان یا شرک اون زمان؟ شرک این زمان، اونها در شدت موحد بوده. ولی در خوشی خدا را فراغوش میکرد بلکه من یفهم قدوس من کسی که بفهمه ولكن أين من یفهم قلبه هذه المساله فهما راسخا والله المستعان خدا خودش فقط کمک کنه خودش یاری بکنه خودش مرا نجات بده والامر الثاني دلیل دوم از بر اینکه چی زمان حاضر بدتر از شرک زمان قدیمه أن الأولين يدعون مع الله أناساً مقربين عند الله إما نبي وإما ولياً وإما ملائكة ملائكين صالحين صديقين بين الخدوة وخدوة أصدقرون من هذا أو يدعون احجارا وأشجاراً مطيعة لله تعالى ليست معاصية يا دراختوا تشوب بي قناه راصدة مننا أهل الشركوا بقل معلوم في مكلفنا وإذا مطيع برئي الخدوة خدوان دفس وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس و الذین يدعونهم هم الذین يحکون عنهم الفجور من الزنا والصرق و ترک الصلاة و غیر ذلك خودم در سودان بودم در افريقا خودشون اهم صوفيها گواه می دادن خودشون می گفتن خودشون می ما اگر زن من رو طلاق دادیم این بین اهل تصابف نکه در در این بر از جنو این بر از جنو همچنان در ترکمنستان و در تاجیکستان و ازبکستان همچنان این امر هست شروخ طریقت وقتی کسی زنش رو طلاق میداد شیخ طریقت میگفت برای اینکه که زنت برد حلال بشه اول باید من به با عقد خودم در بیارم هنوز زن در عدهش هست زن در عدهش هست یک طلاقه هست میگفت بیا من باش همخوابی بکنم به عقد خودم در بیارم هنوز عدهش تمام نشده زنا میکرد با اون زن سپس میاد دوباره عقدش د با اون شوهرش همچنان هم هست من والله از خواب و خیال نمیگم این واقع امته در افریقا همچنان اون شوهر طریقت عمل قوم لوت رو انجام میدن با بچه های مردم همچنان هم هست والله فساقن والله فجارن مشروب میخورن مشروب میخورن سحر جادو میکنن جنبل مینویسن جادو مینویسن تلس می مینویسن تعویز مینویسن رسولا میگه انت تمائم شرک تمائم شرک می حروف ابجدی و نمیدونن ارقامو حروفو اینا می نویسن اینا فجاران فساقان لو اکن انکو کفار مشرکین زمان قدیم لات آدم صالحی بود یغوث آدم صالحی بود نصر آدم صالحی بود اونا صالحی رو صدا میزنن شما فساق و فجورا صدا میزنید اول میگه پول به حسابم برید بعد برا تعویذ می‌ری بي میسم مشتی آدم دوز جنایتکار اهل فسق و فجور اهل تراب والله می رخصیدن تو مسجد من با چشم خودم دیدم شب ساعت دوازه شب بود تو آفریقا صدای دول می اومد و تنفک می اومد و می زدن و می رخصیدن گفتم به رفیقم این چیه؟ گفتم بیا تو ببینی ولی اگر کتک خوردی درست من نیست گفتم نمی خوام ببینم والله رفتم از دیوار مسجد بالا دیدم که زن و مرد محرم و نمحرم نداره همه دارن توی مسجد می آتش آتشی زدن تواف میکنن دور آتش. دور آتش آتش میکردن می زن و مرد سر برهنه اون زنها بی حجاب نگاهی نه بی حجابی نه چیزی ده که به قلد دستش نامحرمه این و یک مرد و این و یک مرد و همه با هم دیگه می رخصیدن و دوحولم می زدن و تنفکم می زدن و این حال چیه؟ حال اهل زمان ما کدوم یک بدتره؟ حال مشرکین اون زمان یا حال مشرکین این زمان حال ما جای تأصفش بیشتره حال ما بدتره حال إن اصحاب طریقت و ترى حال اونها حتی تا جایی که خیلی از این گروه طریقت بی نمازن اصلا نماز نمی خونن عمل قوم بل بلکه نماز هم نمی خونن روزه هم نمی گیرن ولی اینکه چرا چون چرتو جادو می نویسه تعویذ می نویسه چون با جن در ارتباطه ولیی که اعتقاد در لا يعصي مثل الخشب والحجر منما ييععتقدده في من يشاهد و فسق هو فساده شهلوبه. اون کسی که تو سنگ اعتقاد داره تو چوب اعتقاد داره بهتره از اون کسی که تو این فاسق فاجر ذناکار مشرلوغها اعتقاد داره. اونله اقل اون بیژنا را میترسه. این یک شخص فاسق فاجر رو میفرسه. این پرستش بدتر از و هر دو دا را قبول نداریین ولی این پسر از اون یکی هست بحانهك ما بحمدك صله عليه محمد و محمد.